خصل سوم بعد از ظهر انگار پایان نداشت یه گاه صدای ضربه گنگی از آنگونه صداها که اغلب در باغ شنیده می به گوش می رسید به دو خودمان را به باغ می رسندیم به این امید که او بران شده باشد که پایین بیاید سرانجام چشمن به نوک درخت مگنالی آفتاد که تکان میخورد و کزیما از آن سوی دیوار سرکشید و بالا از درخت توت بالا رفتم تا خودم را به او برسانم. با دیدن من انگار رو ترش کرد. هنوز از دستم خشمگین بود. روی شاخه بالا بالای شاخهی که من بودم نشست و با شمشیر کوچکش به خراشیدن آن پرداخت. نمیخواست با من حرف بزند. من برای اینکه سر حرف را باز کنم گفتم بالا آمدن از این درخت توت خیلی راحت است. پیش از این به این فکر نیفتاده بودیم. او همچنان شاخه را خراش می داد. سپس با لحن خوشکی پرسید. هل از اونها خوشمزه بود؟ سبدی را که همراه هم بود به سویش گرفتم و گفتم برایت انجیر خشک و شیرینی آوردم. با همان لحن خشک پرسید. آنها گفتند بیایی؟ سبد را زیر چشمی نگاه می کرد و آب دهانش را فرو می برد. گفتم نه خودم زیر زیرکی آمدم. میخواستن همه بعد از ظهر را به من درس بدهند تا نتوانم به سراغ تو بیایم. اما پیری خوابش برد. ماما ناراحت هست میترسد بیفتی. میگوید باید بیایم دنبالت. اما پاپا از وقتی که بالای بلوط نیستی میگوید که پایین آمده یا یک جای قایم شده ای تا به کار بدی که کرده ای فکر کنی. میگوید جای نگرانی نیست. برادرم گفت من که پایم را زمین نگذاشتم. رفته بودی توی باغ ریوالونده آها، اما از بالای درخت ها رفتم و پایم را به زمین نگذاشتم. چرا؟ نخستین بار بود که از این قاعده سخن می گفت، اما آن را به گونه ای بیان می کرد که پنداری پیشتر دربارش توافق کرده بودیم و تنها می خواست به من اطمینان دهد که آن را زیر پا نخواهد گذاشت. به جای آن که به چرای من پاسخ بدهد، گفت: میدانی، برای دیدن همه والانده چند روز وقت لازم است. درخت هایی دارن که مال جنگل های امریکا هست. نمیدانی چه درخت هایی. در این هنگام به یاد آورد که با من قهر است و نباید از کشفیاتش چیزی به من بگوید. این بود که ناگهان حرفش را قطع کرد و گفت اما تو را آنجا نمیبرم. بعد از این میتوانی با باتیستا و جناب وکیل به گردش بروی آه مینا. من هم میخواهم با تو بیایم. به خاطر حل از اونها نباید از دستم عصبانی باشی خیلی بد مزه بود اما دیگر تحمل داد و فریاد بزرگترها را نداشتم در این حال کوزیما نانشیرینی را میلون باند سپس گفت می میکنم باید نشان بدهی که با منی بگو چه کار کنم باید برایم تناب تهیه کنی تناب دراز و محکم برای بعضی جاها تناب لازم است بعد هم یک غرغره بزرگ و چندتا میخ میخ دراشد مگر چه میخواهی درست کنی منجنی باید خیلی چیزهای سنگین را بالا کشید تخت نه خیلی چیزها بعد میبینیم میخواهی بالای درخت کلبه درست کنی کجا شاید لازم باشد جایش را بعد انتخاب میکنیم فعلا نشانی من این است بالای بلوط تو خالی صبدی را با تناب ازش آویزان می کنم هرچی که لازم داشتم برایم میآوری و توی آن میگذاری. یعنی چه؟ طوری حرف میزنی که انگار می خواهی حالا حالاها خودت را این بالا قایم کنی فکر می کنی نمی با چهره برف فروخته گفت می چه کار که ببخشندم یا نه؟ بعد هم من قایم نشادم از هیچ کس هم نمی ترسم. اما نکند تو می ترسی به من کمک کنی هیچ که فهمیده بودم برادرم فعلا خیال پایین آمدن ندارد اما میخواستم وادارش کنم که به زبان بیاید و بگوید؟ بله تا وقت اسرانه بالای درخت می مانم. یا؟ تا غروب یا تا وقت شام یا تا تاریکی های شب؟ خلص اینکه میخواستم محدوود ای را مشخص کند بگوید که حرکت اعتراض آمیزش تا کجا پیش می رود؟ اما او هیچ چیز نمی گفت و این تا اندازه مرا میترزان. صدای کسی آمد. مادرمان بود که فریاد میزد. کوزیما. کوزیما. و چون مطمئن شد که کوزیما پاسخی نمیدهد داد زد. بیا جا. به شتاب گفتم. میرفم ببینم چه میگویند. بعد میایم و برای تعریف میکنم. باید اعتراف کنم که در شتاب برای رفتن و خبر آوردن این انگیزه را هم داشتم که هرچه زودتر از آنجا دور شوم. زیرا دلم نمیخواست مرا با او بالای درخت توت ببینند و از تنبیهی که بیشک در راه بود به من نیز بچشانند. اما گوی کازیما اثری از این بزدلی در چهرم ندید. گذاشت که بروم. با این همه شانه‌ای بالا انداختا نشان دهد که آنچه پدرمان میکرد برایش اهمیتی نداشت. در برگشت او را همانجا دیدم. روی شاخه ای جا خوش کرده بود. پاهایش را در بغل گرفته و را روی زانو گذاشته بود. یک نفس خودم را به او رساندم و به صدای بلند گفتم مینو تو رو بخشیدند منتظرند که برگردیم اسرانه حاضر است پاپا و مامان نشستند و شیرینی های ما را توی بشخاب مان گذاشتند شیرینی داریم با خامه و شکلات اما آن را باتیستا نپخته باتیستا رفته توی اتاق خودش و در را بسته خیلی عصبانی است پاپا و مامان دستی به سرم کشیدند و گفتند برو به برادرجانت بگو که با هم آشتی هستیم و دیگر حرف گذشته را هم نمیزنیم زود باش بیا برویم کزیما از جا نجام بید. برگی را گاز میزد. گفت، ببین، سعی کن بدون آنکه کسی بفهمد برایم یک پتو بیاوری. اینجا باید شبها سرد باشد. مگر می شب را بالای درخت بمانی؟ پاسخی نداد. چانه را روی زانو تکیه داده بود. به رو به رو خیره شده بود و برگی را می جوید. نگاهش را دنبال کردم که به دیوار باغ ریوالانده و گل سفید ماگنولیا دوخته شده بود. اندکی دورتر، باد بادکی در آسمان می شب شد. خدمتکاران می رفتند و می و میز شام را آماده می کردند. اتاق نهارخوری روشن بود. کازیما از بالای درخت همه چیز را می دید. بارون آرمنیوس سر را از پنجره بیرون کرد و داد زد. اگر دلت آن خواهد آن بالا اما بدان که از گرسنگی می میری. برای نخواست بار آن شب ما سر میز نشستیم. او روی یکی از شاخه های بالای بلوت نشسته بود و ما فقط پاهای آویزانش را می دیدیم. اگر پای پنجره می رفتیم و چشم تاریکی می دوختیم می توانستیم او را ببینیم. زیرا اتاق روشن و بیرون تاریک بود. حتی جناب وکیل هم لازم دید پای پنجره برود و چیزکی بگوید اما مانند همیشه گفتش هیچ ربطی به موضوع نداشت. گفت؟ بله، درخت محکمی است صد سال دیگر عمر میکند چیزکی هم به ترکی گفت که شاید همان نام بلوت بود خلاصه اینکه رفتارش چنان بود که انگار بحث درخت در میان است و نه ازقر برادرم چونین می نمود که خواهرمان باتیستا به کازیمو قبته میخورد. او که کارهای عجیب و غریبش همیشه مایه دلخوری خانواده بود، میدید که کسی روی دستش بلند شده است. پیاپی ناخونهایش را می جوید و برای این کار انگشتانش را به سوی دهان نمی برد، بلکه سرش را به پایین خم می‌کرد. ژنرال به یاد اردوگاهی افتاد که نگهبانانش از بالای درختها دشمن را دیده و شبیخونه او را خونسا کرده بودند. فراموش کردم این اردوگاه کجا بود. در پمرانی یا در قلامستان؟ یاداوری این صحنه دلاورانه، ژنرال را که تا آن زمان دستخوش خوش مادرانه بود سر حال آورد. چنین نمود که به یک باره توجیهی برای رفتار پسرش یافته است. آرام شد و حتی حالتی غرورآمیز به خود گرفت. هیچ کس به او گوش نمیکرد به جز کشیش فوشلا که داستان حماسی مادرم و مقایسه زمینی نهفته در آن را با حالتی جدی تایید کرد. کشیش آماده بود هر نظریه ای را بپذیرد. به شرطی که بتوان بر اساس آن هر آنچه را که اتفاق میافتد عادی و طبیعی دانست و فکر هر نوع مشکل و مسئولیتی را از ذهن او دور کرد. همیشه پس از شام می رفتیم و زود خوابیدیم. آن شب نیز برنامه ایمان تغییر نکرد. پدر و مادرمان بران شده بودند که دیگر اعتنایی به کازیمو نشان ندهند. بران بودند که صبر کنند تا خستگی و بچگایی و سرما و تاریکی برادرم را پایین بیاورد. هر کس به اتاق خودش رفت، بر پهنه نمای خانه، در چارچوب پنجره ها، شمدان های روشن به چشمانی باز و طلایی می ماند. خانه آشنا و آن همه نزدیک چه قصه و حسرت گرمایی را به دل برادرم می نشاند که باید شب را در هوای آزاد میگذراند جلوی پنجری اتاق من رفتم و تصویر گنگ او را دیدم که در فرو میان تنه و یکی از شاخه های بلوت کس کرده بود. گویا پتو را به دور خود پیچیده و با تناب خود را به درخت بسته بود تا نیفتد. ماه دیر سرزد و شاخه ها را روشن کرد. سهره همچون برادرم در لانه هایشان کس کرد و خوابیده بودند. هزار زمزمه، هزار آوای دور دست، سکوت شبانه باغ را می شکافت. باد می گذشت. گهگاه قرش دور دستی تا به آنجا می رسید. دریابو. از پنجره به این آوای بریده بریده گوش می دادم. می چگونگی آن را در بیرون از کاشانه گرممان مجسم کنم. میکوشیدم بدانم حال کسی که در چند قدمی هم چیزی جز شب در پیرامون خود ندارد و دست خوش باد و آن آوا هاست چگونه است؟ کسی که هیچ یار آشنایی جز تنه درختی ندارد که در دهلیزهای بیشمار آن سوی پوست زبرش هشرها در پیله های خود خفتند. بستر رفتم اما شم را خاموش نکردم شاید همان روشنایی پنجری اتاقش می توانست همدمی برای او باشد اتاق مشترکی داشتیم که دو تخت کوچک در آن بود نگاهی به تخت دست نخورده او میانداختم و نگاهی به تاریکی بیرون که او در آن بسر می برد در بستر قلطی زدم و بیشک برای نخستین بار حس کردم که بی لباس و با پاهای برهنه در بستری تمیز و گرم خفتن چه لذتی دارد در همان حال ناگواری حال او را نیز حس می کردم که آن بالا خود را درون پتوی زبری پیچیده بود. پاتاوه ها پاهایش را می فشرد. نمی توانست حتی قلط بزند و استخانهایش از خستگی درد می کرد. از آن شب به بعد همواره این احساس در من زنده مانده است که داشتن بستری با ملافه های و تشک نرم خوش چیزی است. همچنان که این خوشی را مزه مزه می کردم ها در فکر او بودم که مایه آن همه قصه ما شده بود تا اینکه دیگر فکری نماند و به خواب رفتم